پادشاهی که صاحب فرزند نمیشد. داستان نقل شده توسط محمد مشهدی از گنبد از روستای تقی‌آباد. یکی بود یکی نبود. پادشاهی بود که هیچ کدوم از همسراش بچه دار یه یه روز پادشاه نزد پیرمردی دانا رفت و گفت پیر شدم و جانشینی ندارم. پیرمرد به پادشاه گفت برو برای زنات از باغ سیب من دوتا سیب بچین و براشون ببر یادت باشه هر دوتا تا زنت باید سیب رو کامل بخورن پادشاه به باغ رفت و دو تا سیب آورد یکی رو به همسر بزرگش داد و اون یکی رو به همسر کوچیکش زن بزرگ شاه که داشت گندم آسیاب کرد نصف سیب رو خورد و بقیه رو کنار گذاشت ناگهانی خروس اومد و نصف سیب رو خورد همسر کوچیک سیب رو کامل خورد بعد از چند ماه هر دو زن پادشاه صاحب بچه شدند بچه زن بزرگ ناقص به دنیا آمد ولی بچه زن کوچیک سالم یه روز پادشاه به فرزنداش گفت کدومتون میتونید سر دیو رو برای من بیارید؟ فرزند سالم گفت من میتونم برم و سر دیو رو بیارم پادشاه به اون اسبی تازه نفس و شمشیری براق و تیز داد پسر رفت و رفت و رفت تا به قصر دیو رسید دختر دیو که بالای پشت بوم نشسته بود وقتی پسر پادشاه رو دید به پدرش گفت باد اومد و باد اومد یک اسب سوار اومد دیو به دخترش گفت تند میاد یا آهسته آهسته دختر گفت نه تند میاد نه آهسته دیو گفت شادی کن و به خونه بیا وقتی پسر نزدیک خونه دیو رسید دیو گفت بیا با هم کشتی بگیریم اگه برنده بشی سرم رو ببر و اگه من برنده بشم زندونیت میکنم اونا با هم کشتی گرفتن و پسر شکست خورد دیو و اونو زندونیش کرد پادشاه هر چقدر منتظر موند خبری از پسرش نشد پسر دیگه پادشاه که ناقص بود گفت پدر به من یه اصف و یه شمشیر بده من برم تا سر دیو رو برات بیارم پادشاه گفت اون بچه دییم که سالمتر بود ناتون سر دیو رو بیاره تو که نصف بدنم نداری چطور میتونی این کارو بکنی اما پسر اصرار کرد که هر طور هست میره و سر دیو رو میاره پدرش هم برای اینکه دلش نشکنه گفت باشه تو هم برو و به پسر یه اسب پیر و یه شمشیر کهنه داد پسر خیلی باهوش بود. اسب رو جلوی تنور بست شمشیر را همون گذاشت و خروس رو از روی تنور برداشت و راهی خونه دیو شد. رفت و رفت و رفت تا به خونه دیو رسید. دختر دیو بالای پشت بوم نشسته بود و موهاشو شونه میکرد وقتی خروس رو دید به پدرش گفت: سوار اومد سوار اومد یه خروس سوار اومد. دیو از دخترش پرسید: تند میاد یا آهسته؟ دختر گفت: تند میاد، طوری که از زمین گرد و خاک به هوا بلند شده. دیو به دختر گفت: «گریه کن بیا برو خونه. پسر رفت و رفت و رفت تا نزدیک خونه دیو رسید. دیو بهش گفت بیا با هم بچنگیم. اگه تو برنده بشی سر من برای تو. اگرم من برنده بشم تو رو می خورم. پسر پادشاه قبول کرد و جنگ سختی بین اونها در گرفت. پسر از یه طرف و خروس از طرف دیگه به دیو حمله ور شدند تا اینکه خروس و پسر دیو رو شکست دادند. پسر به دختر دیو گفت خزانه دیو کجاست؟ دختر دیو گفت سر پدرم رو قل بده قل بده هر جا که وایسه خزانه هم اونجاست. پسر سر دیو رو قل داد و قل داد تا اینکه کنار تپه ایستاد. پسر اونجا رو کند و برادرش رو دید اونو بالا کشید و خودش پایین رفت تا صندوقچه ها رو بالا بکشه. پسر سکه ها رو داخل صندوقچه میذاشت و برادرش هم اونا رو با تناب بالا میکشید. وقتی سکه ها تموم شد پسر خودش رو داخل صندوقچه پنهون کرد. برادرش که فکر می کرد، این یکی هم پر از سکه اون رو بالا کشید و چاه رو با سنگ پر کرد تا برادرش ته چاه بمونه و بمیره. پسر سکه ها رو برداشت و سباره اسب کرد و با خروس به راه افتاد و پیش پادشاه اومد و گفت سر دیو را آوردم. مادر پسر پرسید پس پسرم کو؟ پسر پادشاه گفت نمی دونم پسر به پدرش گفت بابا ببین چه سکی ارزشمندی برات آوردم پادشاه روی یکی از صندوقچه ها نشست از غذا پسر بزرگ درون صندوقچه مخفی شده بود ناگهان سوزنی را از داخل صندوقچه به پای پادشاه فرو کرد پادشاه گفت این چجور سکه که سیخ داره؟ پسر از داخل صندوقچه بیرون اومد و گفت پدر من سر دیو را آوردم برادرم دروغ میگه پادشاه که پی به ماجرا برد از پسر سالمش خواست دیگه این کارا رو نکنه و اون رو به خاطر مادرش بخشید بعد از اون سالهای سال کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند